زن و شوهری زندگی می به نام های ننه سلطان و شیربیگ. از قضا ننه سلطان باردار بود و زمان زایمانش نزدیک شده بود که یه شب دردش گرفت. رو کرد به شوهرشو گفت امشب بچهمون دنیا میاد و تو باید دنبال ماما بری شیربیگ گفت چطور من یک زن پا به ماه رو که بچهش میخواد به دنیا بیاد تو این بیابون تنها بذارم و برم. نن سلطان آقا گفت تو اینجا هم که بمونی کاری برای من نمیتونی انجام بدی. سوار اصفت شد ماما رو بیار اینجا. تا تو برگردی من خودم از پس کارم برمیام. شیر بک سوار اسبش شد و به طرف کوههای آسفید حرکت کرد. نن سلطان آقا تو اون شب تاریک و اون بیابونی که نه آبی بود و نه آسمون و نه کسی چون زن شجاع و بادل و جورتی بود مدتی رو تنها نشست که ببینه شیربک میاد یا نه کم کم دردش شدید شد و احساس کرد که بچش میخواد به دنیا بیاد بلند شد رو در اجاق گذاشت و یه لگم پر از آب رو روی قرار داد بچهش که دنیا آمد، اونو شست و تمیز کرد و توی پارچه تمیزی پیچید اما همین که میخواست بند روی پارچه رو ببنده یه صدای پای رو از پشت در کلبشون شنید نن سلطان آقا کمی ترسید بسم الله گفت و بلند شد و پشت سرش رو نگاه کرد دید زن خط بلندی پردر بالا زد و داخل کلبه شده و سلام کرد. نن سلطان آقا جواب سلامی شد داد و خوش آمد گفت و پرسید تو کی هستی اینجا چی کار داری؟ زن گفت من ماما هستم. شیربیت منو فرستاده که بهت کمک کنم و بچت رو به دنیا بیارم و کمک حال تو باشم. نن سلطان آقا گفت خوش اومدی شیربک خودش کجاست که تو جلوتر اومدی زن گفت اسب شیربک نتونست از کوه بالا بیاد و همونجا موند نه سلطان آقا که میدونست که شیربک کسی نیست که اسبش پای کوه بمونه و نتونه بالا بیاد ولی در ظاهر به زن گفتش که خوب کاری کردی حالا برگرد پشت سرت و اون کاسه رو به من بده وقتی زن برگشت تا کاسر رو برداره نن سلطان آقا دید که موهاش خیلی بلنده و روی زمین افتاده. بلا فاصله شستش خبردار شد و با خودش گفت که ای دل غافل این آدم نیست و از ایلو آل و جرنه و خودش رو به شکل زن درآورده. برده. نن سلطان آقا بلند شد و تفنگ رو برداشت. این تفنگ رو شیربگ به موقع رفتن به همسرش نن سلطان آقا داده بود که اگر اتفاقی براش افتاد بتونه از خودش دفاع کنه نن سلطان آقا پشت سر آل رفت و گفت من تو رو شناختم از جاد تکون نخور همونجا که هستی بشین و الا یه تیر توی سرت خالی میکنم و خلاصت میکنم آل شروع کرد به قسم خوردن که به خدا به تو کاری ندارم وقتی هم شوهرت اومد بگو منو نکشه. نن سلطان آقا گفت باشه همونطوری که نشستی یواش یواش بخزون بیا کنار این ستون. آل همون کار رو انجام داد. نن سلطان آقا هم موهای بلندش رو گرفت و محکم به پای ستون بست. بعد یه تناب پیدا کرد و دستای آل رو محکم بست. بعد یه جاجیم پیدا کرد و روی اون انداخت که وقتی شیربیگ اومد هل نکنه. وقتی شیربیگ رسید جلو اومد و پرده در کلور رو کنار زد. و رو به ننه سلطان آقا کرد و گفت دیدی چطور خاک تو سرم شد همه جایی این منطقه رو گشتم ولی مامایی پیدا نکردم. نن سلطانه رو گفت نمیخواد خاک تو سرت بریزی. بچه به سلامتی به دنیا آمد. ولی مامای شما قبل از خود شما رسید. شیر با تعجب گفت من که کسی رو نفرستادم. دادم. بعد جلو رفت و جاجیم رو کنار زد و دید که بله یه آل اونجا هست. آل گفت تو رو خدا من رو نکش. من که زن و بچهی تو رو عذیت نکردم. بذار اینجا بمونم. زنت هر کاری داشته باشه انجام میدم و قسم میخورم که تا هفت نسل شما رو اذیت نکنم. ننه سلطان آقا هم گفت بیا این رو نکشیم. بذار کمک حال من باشه. شیربک قبول کرد و آل شیش ماه اونجا موند. و روزی که میخواست از پیش اونا بره یه چاقو به اونا داد که هر وقت لازم داشتن برای از خودشون استفاده کنن. ولی خب البته علام معلوم نیست که این چاغو در آسفیج به دست چه کسی است. امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشید. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی.